اللهم صلی اللهم محمد و محمد عوضو بالله من الشیطان لین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامون علیکم <تصفيق> هر زده احترام پیشاپیش پیش میلاد میلاد از خیر و برکت حضرت امیر علی علیه السلام رو من تبریک عرض میکنم خب در ادامه بحث قدیر بودیم و ارس کردیم خدمت شما که معصوم در دعای ندبه تأکیدشون بر آیات و روایاتی بوده که مورد تایید اهل سنت هم هست که هر انسان سالمی و عاقلی و حق طلبی و منصفی بپذیره این شرط اصلا بحثه شما چیزی که خودت قبول دارر نمیتونی به عنوان استدلال بیاریش هیچ‌کس بعد بگی او قبول داشته باشه تو شیوه مناظره اهل هم زیاد این رو دیدیم مثلا شرط عقل الا اهل بیت هم اینجوری مناظره نمی کردن هر آدم عاقلی اینطور بحث میکنه تو دادگاه همینجوری حرف میزنی تو اینو قبول نداری بر مبنای نظر خودت فلان حالا اگر چیزی باشه که او قبول داشته باشه باهاشم شکست بخوره از نظر بحثی اما خودت قبول نداشته باشی خیلی کار قشنگی نیست مثلا طرف یه ایرادی به تشیع وارد میکنه میگه که شما همچین چیزی اعتقاد دارید تو برمیگردی میگه خب شما هم اعتقاد دارید میره تو رویتشون پیدا میکن شبیه همون پیدا میکن. شما الان اشکال رو دو برابر کردی. اون دهنش بسته سا. اما شیبه دایه نودبه اینه که از بین چیزهایی که او قبول دارد و خودت هم قبول داری و هر دوتاش درسته دلیل آورده. ببین میگن جدال احسن. جدال احسن اینه که چیزیو استفاده کنی تو مجادله تو بحث تو جدل. که حرف درست هم باشد برخی بحث میکردن نقضی بحث میکردن همین جوری تو بارو خودتو درست کن نمیخواد به ما گیر بدی اون یه دونه گیر آورد گیر داده به تو چهار تا میذاشتی روش درسته؟ مثلا نا آمدن اینکه حضرت زهرا اگر از کسی غضب کنه غضب الهی متوجه اوست رو اومدن درستش کنن اینجوری ماله کشن حلش بکنن اومدن گفتن این در و اونهایی که قاصب خلافت بودن نیست در وسو امیرالمومنینه یه چیزی جلب کردن گفتن نمیدونم حضرت علی رفته بوده خواستگاریه مثلا دختر ابو جهل بعد خبر به حضرت زهرا رسیده حضرت ناراحت شده غضب کنه خدا پیغمبرم اینو فرموده اینجا خب اینکه چرتو یعنی اصلا سندی هم میتونی باشون بحث کنی همین روابطشون چقد جهلیه و چیه با این کار ندارم بهشون میگه شما کلی ببینید اون نقضی بحث کردم اینه میگه شما کلی جون کندی که یک از صحابه تا از صحابه رو نجات بدی که مورد غضب الهی چی نیستن دیگه خب یه صحابه دیگر گیر انداختی که تو میخواستی بگی مثلا خلیفه فل... مثلا اول نبود خلیفه چهارم بود چه فرق میکنه تو اگه عدالت صحابه قبول نداری تو بین صحابه فرق میذاری او هم از اشاره مبشر است، ده دهتای اصلی صحابه که میگن بیجه تر بودن مثلا یه موقع از حلی بحث میکنی میگی نه من هر نکته دست میذارم روی آن چیزی که درسته است و تو همون چیزه درسته قبول داریم منم قبول دارم و درست همینه داینادو دا اینجوری بحث کرد برم یه هر آدم سالم و عاقل و حقتلب و منصفی کتابت و حجت تمام بشه که نگه من نشنیده بودم بگه رفتی از روابط خودتون آوردی. اگه از رواحتو امام می آوردیم قبول داشتیم وقتی در دعای ندبه امام علی را آورده بقیه اعمر رو نمیاره دقت کرده باشید. دیگه ما یه جامپ داریم پرش داریم. بعد از امیر المومین الحسن حسن و اینل حسین اینل ابن حسین تمام شده دیگه راجب امام سجاد حرفی زده نمیشه. راجب امام باقر حرفی زده نمیشه. راجب خود حضرت زهر سلام الله ها حرفی زده نمیشه. به یک شباره میرسی به خود حضرت ولی است. یعنی محشی این بوده که امام اول و امام آخر و به اون تمام اون کسانی که بین این دو قرار میگیرن. صادق هم بعد صادق هم بعد ساله؟ تماشید. و ارز کردیم روز قدیر حقیقت ملکی روز علست بود روز علست در عالم ارواح بوده چی بوده اختلافی حالا بخیر حرفو میزن که اون کجا بوده کی بوده میگم اختلافی آیا ولایت منو خدا را قبول دارید تربیت کردن من خدا را قبول دارید قبول دارید من مربی باشم، الاس تو به رب به رب شما مربیتون باشم، میپذیرید معلمی من و خدا رو، مربیگری من و خدا رو؟ قالو بلا، هیچ کسی اینجا نه که یک نفر مثلا مخالفت کرده باشه. از آیات بعدی استنبات میشه که یه در درونشون تو دلشون هیچ زقایی قایم کرده بودن، یک تمون یک چیزی تو دلشون قایم شده بود کتمان می کردن اما اونجا همه گفتن بله چرا؟ چون پذیرش ولایت خدا مسابقه با نعمت هستی مثال که قبلا بارها زدیم چی گفتیم گفتیم سربازار جمع کردن گفتن کی خسته هم گفتن دشمن آره تو دلشون بعضیشون بعضشون فوش می دادن چرا اینجوری میگه اون سربازه، نه، خدمت مقدس سربازی، برای اینکه مجبور پایین پای خدمت رو میخواد، برای اینکه بدون پایین خدمت کار نمیدن، زن بهش نمیدن، نبینم چی، بالاخره چیزایی داره اون، پاسپورت میخواد بگیره، تمع اونها گفت بگیم بله چی بیکشی حالا و خدا فهموند من اینا رو میکشم بیرون همه رو روز قدیر هم همین شد آیا هر کسی من رو قبول داره ولایت منو میپذیره سرپرستی منو میپذیره دوستی منو پیامبر میپذیره من اولا بکن، من از خود شما به انفسکم به خودتون اولویت دارم یا ندارم گفتن بله و من کنتم اولا فهازا علیون مولا همه اومدن بیعت کرد. این هم روز الست اونجا تو ملکوت بود اینجا تو ملکه هر چند یه چیز تو دلشون بود بعدن میزنه بیرون نگران نباشید خدا اصلا گذاشته که اینا بزنه بیرون همانطور که اون روز الست هم بعدن برای شیطان زد بیرون ت... ارس کردیم قرآن میفهمه کان همین نه کافر کافرها بود اینجا رو شد بحث کردیم این ساره و کانه رو اینا بحثش انا وقتش نیست باره برام همه بیعت کردن کسا که بعدا قصف کردن حق امیران مومنه اومدان بیعت کردن بخن بخن مبارکت باشه یا علی از مولای تو مولای ما شدی و مولای کل مؤمنین شدی اگر همینو به معنی دوستی بگیریم یعنی کسی که این حرف رو زده که خلیفه دوم بوده بگی معنی دوستی بوده میگه شدی مولا دوست ما دوست همه مومنین یعنی داره اعتراف میکنه تا قبلش باید دوست نبودم <تصفيق> پس ما هم دشمن بودیم یه کاری نکنید که شست چیزی چیز بریزه به هم که بدتر میشه که این از اینجا بحث دوم هم مهم گوش کنید در آیه تطهیر میبینیم که آیه تحتیر که گذشتیم نیگه ازش اینما الله میبینیم یک جمله معترضه است در وسط آیات مربوط م... به همسران پیامبر یه هوی زمایر تغییر میکنه همش کنه کنه ایناس یه کم میشه بعدش هم دوباره کنه میشه قبلش هم همینه آیه قبلی همینه. تو همین آیه هم همینه. قبل این جمله مترزه. آیه بعدی هم همینه. و این یه که با سیاق آیات همخونی نداره. نه زماعرش نه بحث فضاشی چیش. صحبت قبلا اگه تقوان نداشته باشید فلان خواهید شد. دقیقا در مورد انسانه معمولی داره حرف میزنه. که حالا باید بیشتر رایت کنند چون این مسئولیتی دارن اما امکان خطا دارن میگه صدای خودتون تغییر بدید وقتی میان پشت در مثلا حرف میزنید با نامهرم اون شاید مریض باشه تو دلش مرز باشه خدای نکرده نسبت به شما همسران پیامبر حسی درش شک بگیره یه جلیه مرزی رو بگیرید یا مرزی خودتون نه مرزی اونا رو اونا سوء استفاده نکنن بعد یهویی یه صحبت از اراده تکوینی خدا و در مورد پاک کردن یک گروهی میاد بعد دوباره همون بسته تا حدی که اگه شما این بخش مروض باید تطهیر رو بردارید اصلا آسیبی به قبل و بعد نمیخوره مثل شما دارید دا قصه طبیعه آقا ما رفته بودیم مثلا چه میدونم مشهد این اتفاق افتاد اون اتفاق آن راستی چیدم بگم فلارین رو اونجا دیدم اونو همسایه بودی بود ماجراش اینه بگم اونو برداری قصه مشهد شما حاصلی بینه میگه وقر نفی بیوته کن بشید هاتون دیدی گوش نکردن اومدن جمل و اینجور چیزا رو انداختن ببین خدا قبلن گفتیم کار نکنید گوش نکرد خلاف صریح آیه قرآن عمل کرد بلا تبرج نتبرج جاهلیت لولا تو چشمم نه ایدا. مثل اون جاهلیت اولی و عقمن نه نمازاتونو نمازاتون رو بخونید و آتین از زکات زمایی رو میبینید عقمنه نه و اطعن الله و او از خدا رسولش هم اطاعت کنید این نما یورید الله لیو سبعن کم و رجز تحلالا دوی کم تحتیرا این تی که جمعه معترضه آیه بعدی این چیه؟ وذکر نما یطلافی بیوته من آیات الله و لحکمت بازوره میگه بابا شما تو خونه هایی هستید که اونجا آیات قرآن نازل میشه حکمت نازل میشه چهار تا سال درست بپرسیده در پیغمبر؟ دسترسی که تو به پیغمبر سوالای سآلهای درست از این حکمت بهره ببرید ببینید دوباره زمایر برگشت اینو چرا گفتی؟ من میرسیم با همین قدیر آیا مثلا وقت نزولشی نبوده؟ یه تایم دیگه نزول نازل شد این آیه جای دیگه نازل شد آیه اینو برداشتن بردن اون لا گذاشتن کی برده گذاشته؟ آیا سرخود این کارو کردن یا به دستور پیامبر بوده ما روایت های هم داریم که پیامبر فرمود این آیه رو میبرید میذارید آخر سوره فلان وسط سوره به همه داریم مثلا تو روایت داریم که پیامبر فرمود مثلا این آیه رو گفتم برمید مثال آیه 282 یک و تقو يومًا ترجعون فیه إلى الله بترتيب از روزی که تو خدا بر برمیگردید ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون این آیه است این 281 بقره روایت ها میگن آخرین آیه‌ای است که بر پیامبر نازل شد آخرین آیه بر پیامبر نازل شده بشه یعنی چه سالی سال 11 هجری درسته سوره بقره چه سالی نازل شده دویه هجری میگم پیامبر فرمود این آنه این... به من وحی رسیده میبرید میزارید آخر بقره درست شد ما به این کار نداریم میخوام بگم نمونه قبلا در قرآن دارد اصلا انگیزش چیه بحث میکنم اما میخوام یه چیز برسیم یه خور سبور باشید چرا چون این چیزی اتفاق می افتاده مل بس. برخی میگن برای این که این تکه از آیه در چشم نیاد استتارش کرد پیانبر آیه تدهیر گفت ببرید و اونجا بذارید که انگیزه یعنی ببینید علت این که قرآن تحریف نشده دلایل زمینی هم دارد اینو ببرید اونجا بگذارید خیزی مثال براتون بزنید اونجای خوب یه روزی سپاه اومد جواب حمله داعشو داد به مجلس حمله کرده بودن یه دو روزی حسن روانی ساکت بود بعد دو روزی مردم خوششون اومده گوه رئیس شورا علی هم ملی من هم من دستور دادم گوش کن فرمانده این نیرو مسلط دونه دونه شروع که مسابقه کردن نه آقا به اینش ربطی نداره ما یکی دیگه دستور میگیریم یه <تصفح> دوره به ملت فهموندن که آقا کار یک دیگه بسته شد مثلا ها دیگه اسمش رو که کی موقع رفتن صحبت کردن اون موقع من یک دو تا از این عزیزان دیدم گفتم ببخشید جسارت اما به نظرم نباید این کارو می‌کردید گفتم گفتم پارادایم شما رو پذیرفت او پذیرفت پس موشک خوب است بابا رئیس همون میگه موشک چی چیه دنیای فردا دنیای گفتگو و مذاکره با این چیزاست الان مینی دنیا با مذاکره داره پیش میره کامل مینی مذاکره روسیه با اوکراین مذاکره اسرائیل با سوریه مذاکره اسرائیل با قزه و همه همه مذاکره اصلا الان دیدی که مثلا ژاپن هم اعلام کرده منم میخوام در بر مذاکره موشک لازم دارم منم میخوام کارهایی انجام بدم کوره داره خریداش زیاد میکنه همه چی گفتم پارادایم شما رو پذیرفته بود میگفتی باریکلا پس موشک خوبه اصلا چهار تندونم اندونام تو زیر بغلش نواد این کار میکرد ببینید این چه هوشمندانه این جمله معترضه این آیه این بخش هر گذاشته میشه اونجا در اونها انگیزه ای به وجود میاره برای حفظش که به سمت قلقم کردنش نران بلکه سر تورات اومد سر انجیل اومد پس اینکه قرآن حفظ شده از, تح... از تحریف کراهی و مهندسی هوشمندانه دارد یعنی پیامبر تما... شما مثلا پیامبر یا آدم بود که مهربون بوده اصلا فقط بهش وحی میرسید مرد گفت نه تمهیدات اندیشیده این اینجا میرفته کارش این هر جای دیگه میرفت زب میشد متر شدید؟ هر جا دیگه می رفت می اینجا گفتن خوب جایی اومده. خودمو خرجش میکنیم. کنیم، باسم خودمون فاکتورش میکنیم. کنیم، کنم دارن فاکتور میکنن دیگه، منطقه هم اینن مهره معتبر نیستن. کد اقتصادی معتبر نیست، یه چیجا بشه، دیگه ریخته دیگه پخش هم شده کسی هم نمی عکس فاکتور اومده بیرون تو شبکه اجتماعی چرخید پس یک دلایلی که دست به تحریف قرآن نزنند برخی میگن چرا اسم حضرت علی مثلا سراحتا نیامده راجعه ما بحث کردیم دیگه لسان صدقن فلاخرین لعلی نحکیم نمیگذاریم کنار میگه همینشم چیه؟ دو پهلو جمله چرا؟ چون اگر سراحتا میامد کات میشد کاتش میکرد مثال هایی داریم از ادیان گذشته که اسم سراحتن آمده رفتن تو تحریف کجا به ماها رسیده جایی که اینا با هم دعواشون شد مثلا صبی با مسیحی ها و یهودی دعواشون شد اینا خودشون شاخت اینان صبی پیروان و حضرت یحیان. یهی های تحمید دهنده ازداد علیه السلام که سور مریم بهش اشاره شده. اینا تو دعوایی که با اونا داشتن یه چیزایی رو نگه داشتن. که میدونی که اصلا کلن تو مملکت ما کسی با این چیزا کاری نداره. اصلا این چیزا رو نمیفهمن. جدی میگم و نمیفهمن که برن همین کتاب یه نگاهی بکنن. مسئله دیگه این که شاید انسان عاقل بیاد دقت کنه بگه خیلی ها کنار پیامبر بودن و با هم مقایسه کنه بین همسران پیامبر و حضرت زهرا سلام الله بین زید و امیر امیرالمومنین اینکه این اراده خاص الهی چرا یهودیان در مورد اونها حرف میزنه زمینی تغییر میکنه چقدر متفاوت میشه آیه اینجا مراقب باش سوء استفاضه از صورت نگیره بشین تو خونه هاتون قشنگ دستورات زمینیه میبینی یهودیان واسط نخر خواهش میکنم شما که بفهمید اینجا اصلا جاتون رو سر مسجد طهرا تحرکم تطهی خدام خواسته یرید الله این قیاسه کنار همدیگه فراهم باشه. مبنای مقایسه فراهم باشه. راحت شما باید این مقایسه مقایسته کنید. و اینکه اهلبیت اهل بیت پیامبر آل پیامبر متفاوت بودن. برای همین شما باز میبینید خدا قرآن در بین صحابه، تنها صحابه که اسمشو به سراحت میاره که زیده. برای چی؟ مشخصا جداش کنه. بگه او فرزند خونده است فرزند خونده مثل فرزند اصلی نیست در چه؟ در ژنتیک که <تصح> فردان نگن آل پیغمبر همین آل زید بودن زیدم بچه دار شده سوش اصامه پیغمبرم پیغمبر دوستش داشت بچه خوبی هم بود 19 سالش بود گذاشتش فرمانده کل سپاه اون اباخر که از حج برگشتن سپاه ها که فرستاد برای جنگ سمت اردن تمام صحابر گفت همه تون باید حکومت او رو بپذیر فرمانده رو بپذیر 19 سالش بود یا 21 سال تمام این آقایین که بعد ادعای خلافت کردن و به خلافت رسیدن معمور شدن برن از او حرف داشته باشن عمدن این کار کرد که بگه شما باید فرمانده یک نفر تو سن پایین گوش نکردند دیگه. و لعنت کرد هر کس تخلف کنه از جیش اوسامه از لشکر اوسامه تخلف کنه رو لعنت کرد پیامبر گفتن ما نمیریم فکر کردی حضرت علیل نگه داشت تو شهر خود هم وایستاد سی هزار نفر رو گفت برید <تصفح> شهر رو ببینید نگاه برای خلافت امیر المانی زمین میدونی این رو کودت میکنن کودت شهر رو برید این گفتن ما نمیریم اینجا خبرهایی آه لعنت یاد پیغمبر بکنه نه اینجا ما تکون نمیخوریم اونه اتفاق افتاده وگرنه همین اسامه میشد چی؟ آل پیغمبر فرد چون در اعراب این رست بود فرزند خونده این فرزنده مثل گفتیم که امعیه امعیه فرزند خونده عبد شمس بود آوردش به فرزند خونده ای قبول کرد برای همین الان مت... امیه یهودی بود قلام یهودی عبدالشم وقتی اخراج شد از مکه دعوا شد با هاشم اینو اخراجش کردن شورای دارون ندوه بزرگان قرش نشستن گفتن این هر از شر درست میکنه اینجا ده سال رفت شامات در اونجا از این قلام یهودی خودش خوشش اومد امیه اینو ورداش آورد برد فرزند خونده منه فرزند خوندارم این فرزند می دونستن برای همین ولی بر اومعی هم از قرش اما از قرش نیستن برای امیر فرماد و لیسل لسیخ کساری شما الساق شدید چسبیدید به قرش به بدنه اصلی شما جزو این شجره نیستید شما اصلا ربطی به آل ابراهیم ندارید از این ایست از فرزندان اسمایل نیستید از این اما ما سراحتا از قریشیم خب همین اتفاق میخواست بیفته. باید چیکار می‌کرد بعد یه حادثه‌ای رخ میداد. ببین یه اتفاق اجتماعی بپیچه چون فرزند خون در مثل فرزند میدونستن زنشون هم حرام میشد. یعنی چی؟ یعنی اگه فرزند خونده زنشو طلاق میداد مثلا پسر یه نفر زنشو طلاق بده بابای میتونه بره بگیره؟ نه. فرزند خونده ای طرف بوده همسرش طلاق میداد نمیتونستن برم که ماجرای زینب بنتجهش به وجود آمد زن, اوسا... زن زید بود طلاق گرفت دستور داده شد به پیغمبر که بری بگیرش آیه داره سراحتن هم پس اسم زید رو میار که او رو جدا کنه به خدا داره بعد بعد از پیامبر آماده میکنه تو همین قرآن پیامبرم هم داره زمین آشو آماده کنه خود پیامبر مثلا اینا رو مراعات میکرد میگفت مثلا خب الان مردم چه فکری شاید بکنن آیه آیه‌ای اومد گفتش که باید بری و این کارو انجام بدی در ثانی بعضی اینجوری برداشت کردن دیگه الان الزامند بگیم ما هم قبول داریم یا نداریم یه بحث دیگه است که محل بحثمون الان نیست اما خدا برایش قرآن نازم میکنن که دهنا رو ببنده چون این ها اگه ای چیز آیه نمیبود قبول نمیکردن گفتن تو هم یکی مثل ما تو آیات فقط تو معصومی تو وحی معصومی غیر وحی معصوم نیستی یا این ماجره هایی کسا برای چی به وجود میاد همه رو جمع کن جغرافیا ها تنمی کن اونایی که زیر یک عبای مشخصن اگر میگفت سخف میگفتن پنجا نفر دیگه هم بودن جز اینه؟ تو مسجد بودن اسم اضافه میکردن کی به اسم اضافه میکردن میگه آقا زیر یه دیگه چند نفر جا میشن؟ <تصفح> اینا رو دقیق داشته باشیم خب حالا چیه این؟ آیه اکمال هم همینه ببینید چه جوری قشنگ جمله معترض است یه بار دیگه آیه ار موروکم تنتنا حرمت علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر وای بر شما هارون شده خون و گوشت خوک و گوشت مردار رو اینا رو داره صحبت میکنه اونی که نمیدونم خدمت شما عرض کنم به نام خدا به غیر, به غیر نام خدا زب شده باشن حیوانا که خفه کردید به زجر کشید از بلندی پرت شدن، بزکویه افتاده مرده اون بغل بعد رفتی اون رو نمیتونه بخوری ها. یا به ضرب شاخه یه حیوان دیگه ای کشته شده و ببین چقدر به دیتیل وارد شده دیگه بزکویه چی میشه یا خودش مرده مریزه یا یکی اومده مثلا با شاخ زده بلیسر جا آورده یا از کوه افتاده همه رس میبره وارد دیتیل شده باقی مانده سید حیوان در رنده ای باشه شیر اومده مثلا گرگی نصفش خورده ما بریم بقیه‌شو این مثلا این بخشش کار نداشته ما بریم بکن جدا کنیم بردوریم ببریم میگه اینا رو نبد اینا رو بخورید یا حیوانایی که روی بوت‌ها زب میشن بر شما حرام است اونایی که رفتی قمار کردید یه حیوانی رو با های تیر می‌بستن تیر می‌زدن سمتشون فلان اینا حرام است تمام اینا فسق و گناه ها اینجا جمله معترضه رو حذف میکنم بقیه ایه اما اونایی که تو حالت گرسنگی هستید دیگه دارید میمیرید دستتون به غذای دیگه این نمیرسه اشکال نداره دیگه چاره ای نیست جوره اون بخش اول بود اینا بخش دومشه شما من بچسبونیم ششقم قشنگ همین اصلا انگار یهو این وسط الیوم یایسلذین کفرومندینکم امروز کافران دین شما مایوس از اینکه بتونن بر شما غلبه کنن فلا تخشا و هم وخشا از اونا نه ترسید از من بترسید. الیام اکشمل تلکم دینکم و اتمم تو علایکم نعمتی و رزید تلکم الاسلام دینا. امروز این هم کامل که و رضایت دادم اسلام دین شما باشه اینو وسط بود. وسط همین این ماجره قبلیش خکم کارو داره میگه و اونو بیرم چیو تهشم میگه گوشتگی میماردی دیگه اشکال نداره بخور. راستی امروز شود این وسط. بیرابترین حالت ممکنه شما متوجه میشید که این یه تایمه دیگه داشته اون یه تایمه دیگه داشته به دستور پیامبر یا هر چیز دیگه این رفته اینجا اما حدس تو قرآن مثل آیه تطیر این آیات الهلوید عل اینجوریه حضرت جلو موسوی میگفتش که موسوی زنجانی میگفت این سوره کوسر خودش بین آیه, و آیه فلان و آیه به همان فلان سوره آمد خودوم آیه آیه ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقط آتين آل إبراهيم الكتاب والحکما وآتيناهم ملکاً عظیما به آل إبراهيم برکت دادیم پیامبری دادیم انا کل کلکوف اون کسریتی که دادیم همینه فصل ال ربک وان خر که وال ابتر یعنی تیز تیز میشدین آقایم بیاد بیرون بره یه جا دیگه معنیشم کامله ها فکر نکنید آسیبی مثلا از نظر معنوی هایی برای همین به از این میدیدی بیست و پاشو برو ته بغره اونجا بشیم آخرای بغره اون دو نازشین 11 یازده هجری نه سال فاصله است خود خطبه قدیریم پیامبر نشارده گوش کنید و اکنون به, با... به عبودیت خیش و پروردگاری او گواه میدهم پیامبر میفهم اول خود میگه من عبدشم. او هم خدای یکتاست. و وظیفه خود را در آنچه به شده انجام میدهم. مبادا که از سوی او عذابی فرود آید که کسی را یاری دور ساختن از آن نیست. میگه نگم مورد عذاب الهی قرار میگیرم. قشنگ در این خطبه پیامبر اینها را میترساند. همون روزم هم گفتم براتون یه شاپ سنگ همون هم با... میاد یکیشون اونجا حرف مف میزنه یه شاپ سنگ خودش میگه آفر خودشه میگه اگه اینجوریه سنگ بخور تو کلم سورت یک کل... سنگ بخور تو کلمش. همه غلاف کردن ترسیدن جلو 100 هزار نفرم داره اینو انجام میده بعد تهدیدم میکنه میگه میشناسمتون منافقا میدونم الان من کدومتون ناراحتید اگه میخواستم مردم رو میشوروندم سمتتون یعنی بدونید این ابزار الان این اسلحه پر شالمه ها دست اصفا خطا کنید مردم میشوروند همینجا علایتون تیکه, تیکه تیکه تون کنن و این اتفاق نوید تو پس و پس تو بیفته که یه لابی صورت بگیره یه چیزی هست هم همه باید باشه از این دو بر رو در نهایت شفافیت در حج باید باشه که تمام اقوام و گروه هستن. نگن آقا تو بین مدینه یا گفتی، بین قرشی ها گفتی، بین انصار گفتی. همه بیان یمنیه بیاد. نبیرم کی بیان تازه مسلمانه بیاد. رومیه بیاد. سلمان فارسی باشه. به رومی باشه. ها همه جمع باشه. که انگیزه های نژادی و فلان چی بشه؟ برچیده بشه. اصلا همین مخالفت های نجادی و قبیله اشیرهی باعث بشه حفظ بشه. ببین درگیری چیه سنی با هم دیگه باعث قرآن حفظ شه. این به پای اونو اون قرآن تحریف نکنه و به پای این قرآن تحریف نکنه. 1400. درست یا نه؟ هرچند توانش بسیار و دوستیش با من خالص باشد معبودی جزو نیست چرا که اعلام فرموده که اگر آنچه آن نازل کرده به مردم نرسانم وظیفه رسالتش را انجام ندادم آیا مردم خبر داشته باشین خداوند اینجوری گفته. و خداوند تبارک و تعالی امنیت از مردم را برایم تضمین کرده خیالم راحته نمیدنم چه برای میخواد سرش بیاره اما حتما یه برای سرشون میاد خدا تزمین کرده نمیتونید کارم کنید اینا موجوزه پهیمبر دیدن یه شاب سنگم خود تو کله یا رو مثلا در سالها دیدن الان همه غلافن ترسیدن بدون چی شو تو قدیر متفاوت عمل کردن دلیل منطقی داره و البته که او بسنده و بخشنده است فعوها علیه پس به من وح کرده بسم الله الرحمن الرحیم یا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك في علي يعني یعنی في الخلافة لعلي ابن أبي طالب و يا و خلافة علي ابن أبي طالب و إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس خود پایمار اونجا میگه در مورد چی من ربک چیه موضوعش فی علیه این در مورد علیه یعنی فل خلافت برای کی لعالی ابن ابی طالب همین کسی که دستم تو دستش. فعالم با معرفی که چه شدت و همه تون ای مردم ما قصر تو فی تبلیغ ما انزال الله تعالی. بعدون که من تو تبلیغ کارش کوتاهی نکردم قصوری ندارم تقصیری ندارم. و او انا انه من طبیعی دارم میکنم بیان میکنم مشخص میکنم برای شما هذه ال آیه این آیه را ان حبت حَبَتَ إِلَّيَّ مرارا ثَلَاف سه بار تا الان بر من نازل شده در مورد همین موضوع یعمرانی ان السلام ربی سلام خدا رو به من رسونده پر بردگاران و هو السلام چه او خدای سلام است ان انعقوم فی هذا المشهد که من قیام کنم برای این کار تو همین جا جلو چش همینجا که محل شهود همتونه و چش دارید میبینید و اعلام کنم به کی کل ابيض و اسود به کل سیاه و سفیدتون برده و آزادتون ان علی ابن عبی طالب که به راستی علی ابن عبی طالب اخی و وسیعی و خلیفتی ولی امام من بعدی ولی بهتون بگم اخی وسی خلیفه امام <تصفيق> الذي محل محله منی محل هارون من موسی اینجاش خیلی قشنگه الا انه لا نبي بعدي با این تفاوت که بعد از من پیامبری دیگه نیست و هو ولی لیکم بعد الله و رسوله اون ولی شماست بعد از خدا یه دقیقی و رسولش که قد نکردید ماجرا هارونو گفت پیامبر این لا حواسش هست در مورد هارون پی... تب... چی صورت نگیره تحریف صورت نگیر راستی بدونید بعد هارون پیغمبر میاد بعد از من دیگه پیغمبر بعد از موسا هارون پیغمبره اما بعد از من علی پیامبر نیست تا این دیتیل و حواستش هست بعد بیای ول کرده بله یه دوستش دارم نگران برداشت نقل راج به هارون هست نگران هست که بعد از خودش نگران یاد ادای پیغمبری کنن کاملا نگران دینشه پیامبر این دینه و نگهبان این دینه و حارس این دینه فقط انزل الله تبارك و تعالی علا به ذالک من كتابه هی که خدا بر من این فروردگاه آیه بر من نازل فرموده بود که اون چیه هیه؟ این آیه اینه اینما کم الله و رسوله و الذین آمنو و یقیمون از سلات و یوتون از و هم را این آیه اریادتونه؟ این آیه این ها و علی ابن عبی طالب الذي اقام الصلاة علی همون کسی که نماز برپا داشت و ات الزکات زکات رو پرداخت کرد و هو که اون، به در حالی که رکو راکه بود یورید الله عز وجل فی كل حال که او این کارا رو زکات در هر حالی برای خدا پی پیوسته خداخواه اوست او خداخاهه و سأل تو از جبرئیل پرسیدم خواستم اننیست تعفیلی ان تبلیغ ظال کرد از جبرئیل خواستم گفتم میشه دوبار قبلتر اومده گفته که اینجا گفتم میشه بعد بنوه ایناش جنگ درست میکنن من می بینم تو دل اینا چی داره میگذره؟ همینجا اینجا میکشن تیکه پاره میکنم. میشه منو معاف بدارید از تبلیغ این میشه از خدا بخوای؟ چرا پیامبر با وجودی که این داره آیان میکنه نقش خدا رو به شدت پررنگ میکنه با صافه میگه با خود خودش طرفید تاید شدید؟ <تصحیح> پیامبر قشنگ داره میگه حال شما منافقه رو من فهمیدم درکتون میکنم خیلی درد داره براتون پذیرش علی مثلا سفر. <تصحیح> مثال ها مثال 20 بار بگیم مثال شهر نشه میگه میشه استعفا بدم؟ میشه معاف داشته باشم از این ایوهن ناس برای چینو گفتم لعلمی به خاطر آگاهیم از خبرم از چی بقلت المتقین که تو شما آدم متقی کم و کثرت المنافقین منافق تا دلتون بخواد هست و ادغال اللائمین سیسه گری مللامت گان و هی ال... ال... مستحظه و مکر مسخره کنندگان بل اسلام همون هاتون که مسخره میکنید تو خونه هاتون یابا با هم دو نفره میشینید اسلام مسخره میکنید منو مسخره میکنید هیله میکنید همه رو خبر دارم ببین اخبار به کلی سریشونو و پنج برنج می سه نفره با هم حرف زدن پنج اونجا اونجاه. اینا دیگه قلب میگنیم تمامه <تصفيق> هر لحظه منتظر بوده یه شبسنگی بخورد کلده یا همین الان پایین بر بگه خب این علی رو معرفی کردم حالا شما مثلا چند نفر باشید بینا فرمانده منافقه هم مردم همینجا تیک بارشون کنید روی بیرن و جالب اصرار داره تو کنشگری خودشون از حیث اجتماعی رسانی میخوان بگن ما اونا نیستیم شنان شرایط رو براشون کرد که شروع کرد آمدن به امیرانوهای تبریک گفتن به اتحادی نکردن چهار تا جمله اضافه هم گفتن آقا ما که مخلیستیم اراده مبارکتون باشه آقا شالا به سلامتی چرا؟ همه آنها که خداوند در کتاب خود و صفه هم الله فی کتابی که خداینا قبلا وصفشون کرده بود کتابش و انهم یقولونه به السنته هم ما لی سفی قلوبهم. چیزای به السنته هم به زبونه هم میگه لی سفی قلوبه ام. که تو قلبشون نیست دروغ میگن و یحسبونه ها حینا و هو عند الله عظیم و فهم کن چیز آسونی کمی آلا چیزی رعایت میکنم نفاق کنیم زبونمون یه چیزی بگه قلبه آسونه چیزی میف حیینه نه و هوه اندالله عظیم خیلی نزد خدا این نفاقتون سختیم آقا مراقب باشیم بین دلمون و زبونمون فاصله نواش پیانبر میفهمون برای خدا خیلی بزرگه خیلی مهمه برای خداونده مطابق و کثرت آزاهم و زیادی این اونا لی برای من برای منافقو به من آزار رسوندن. حتی سمونی اذنوا تا جایی که اسم منو گذاشتید گوش تو جلسات خصوصیتون میگفتید فلامونی گوش هر چی بگیم باور میکنه فکر کرد خبر ندارم اسم مستعار اسم طعنه زننده ای این که لائمین سرزنش کننده می سرزنش میکن, می تیکه میندازید مسخره مسخره کنندگان فرمودید یا نمیدونم به من میگید گوش خدای من منو باخبر کرده از جلساتتون و زعم و انی کذالک فکرم میکردم من همینجوری مثلا استغفر الله زود باورم برای چی به خاطر همراهی افزون علی با من و توجه و روی کرد من به او تا بدانجا که خداوند در این موضوع آیه فرو فرستاد حتی انزل الله وجل فی که این آیه رو فرستاد و من هماللدین یعزون النبی و یقولون هو اوزان اون کسایی که وضعیت میکنن پیغمبر رو میگن او گوشه قل اوضونو بگو همین گوش لزی از عمون نه بر اون کسایی که فکر میکنن او اوضه خیر رو لکن بر خودتون خوبه. یومنه بالله و یومنه منو للموومین به خیر شماست او آن پیامبر به خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق میکنه به راست می ده. اینتی که آخرشم برتون میگم. و لووشع تو اگر میخواستم که، اسم قائلی نه به ذالک اسم کسایی که اینا قبول دارن قائلن گفتن گویندگان قول رو گفتن به زبان آورم یا به آن اشاره کنم لسمه و یا مردم رو و ان اومی الیهم هم به اعیانهم و مردم رو به سوشون هدایت کنم میتوانستم توانستم هم میدون جرس تهدیدی تحدیدیه همه قلاف کردن شاب سنگم اومده <تصفی <articles> <تصفی> لیکن سوگند به خدا در کارشان کرامت نموده لب فرو بستم با این حال خداوند از من خوشنود نخواهد گشت اگر اینکه آن آنچه در حق علی فرو فرسته شده به گوش شما نرسانده باشم لا یرد الله منی من الا ان جی؟ تبلیغ کنم برسونم ما انزل الله فی حق علی ثم تلا سپس تلاوت کرد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی حق علی و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله که من الناس تو قرآنی که امیر المومن جمع کرده بود این توضیحات پیانبرم بود پا بود، پا بود، برخی اینطور گفته تو قرآنی این که اینا جمع کردن، زیر نویس و توضیحات پهیمبر چگاه کردن؟ حسر تو چینش سوره ها تقریبا اینجوری چیدن از سوره های بزرگ و تقریبا یه هم داره سوره بزرگتر، جلوی قران ابتدای قرآنه بقره، آل امران، نسا، ها؟ اینا ام اینا سورهای کوچیک آخر قرآنه در حالی که این سورهای کوچک اول نازل شده اینا مکی ان اکثرن اون کسی که همون اول اسلام آوردی که نباید دیگه در مورد گوشت خوک و چه جوری چادر میگیرن و چه چیزاهم چه کار میکنن نافرازان رو میپکه <تصح> اون همون اول بعد بگی که قل اعوذ به الناس ملک الناس الاه الناس من شر الوسواس الخناس میپکه برات بگی قل يا ايها الكافرون مثلا اینا رو یاد بگیر برای اون قلو والله احد این کوچولو کوچولو تمرینای جزئی فعلا یارو همون اول که نمیبرن اورست فقط کنه که دوس دور میدون میچرخونن شه دو تا نشستی بشین پاشویی بر روز ابر امروز بعد پاشو برو نماز خونده یارو مسلمانه چی برش میخونه به شما اقتدا کرده کوسری میخونید قلو والله امینا سری نمازه تمام شه یارو سرویس نشه بعد وقته بشه بغره مغرباش نمیخونی که بغرار تو خودت هم نمیخونی لامصب چه برای اون بیچاره بخوایی بخونی؟ بعض یاد دید میدید مثلا امام رضا دو ساعت بگیر به بعد بیا بشینیم نماز صبح دو رکت میخواد بخون یعنی میدونه اون حواشی نماز از خود نماز چیه؟ خیلی بیشتر خب خدا میدونه دیگه اینو دو رکت گشته صبح سر صبح وقت اون کارانی بعد میبینید مثلا میگه خب من یعنی یه قولوالله بخونم و یه کوسر تمام دیدی بعضیشون خفتت میکنن دیدی حالا حجبت برید نمیفهم از کجا قرآن شروع داره میخونه میگه آخرش چیه واقعا به تراویح میفتی یعنی پا عوض میکنی از خستگی انقدر سر پا بایستدی عدیاره گفتم براتون یهویی یه دونه آیه سجددار میخونم وسط وسط سوره بالا یا همه با کلمینن تو سجده دوباره میان بالا بقیه سوره رو میخونن میرن میادی میان یه دور دیگه سجده ما ها که هیچ خود اهل سنت رو بعد میدید چه جوری دونه دارم دارن میریزن مال یا اون اونوری بود نمیدونم ترکیه یا اون طرف دراز کشته بود این تو رکوع بود تو سجده بود یکی که کللش واژاده بودون یکی دراز شد. چی که سینه خیزون که پیشین پاشو میرف که دراز نشه میرم یک نماز جماعت <تصفيق> سهربازو اومده بیارو موال زیادی هر گرفتو بلند که باشو الان نباید مثلا بمونی اونجا بنده خدا منتظر تشعود بود نمیدونم چی بود بعد این جمله معروف پیامبر در ادامه دارن که معروف اللهم والمن تهدیدارو کرد گفت از سمت خود خداست انقد پدر سوخته اید که من به جبریل گفتم میشه یه دوردی اینو عقب بننازی اما خدا گفت نه امروز با منه کلن کار امروز اجازه جولان به منافقینو نمیدم شب سنگه آماد از خب دیگه تهدید پیامبر مردم را غسيل کنم می توانستم لسمی تو میخواد اسمشون رو بگم بس مردم بگم برید سرش باباشو در بیارید همه از ترس اونم عادت بیشتر هم چیز میکردن دیگه سه روز طول کشید بیعت تببین چه جمعیتی بوده تو صف بایستادن نوبتی این زنها میگفتن ما هم باید بیعت کنیم. با با شما نامهرمید هم از را دور بیدن. نه نه نه نه دی... تشت آب آوردن آب, آب ریختن توش امیرانون این ورد تشت دستش گشته تو آبینه دستش میگنم نه ما هم بگیم آقا ما بودیم نفرستی خدایا. آیا این مثال دیگه ای داره تو قرآن که بگی مثالی خود خدا آیا ورده باشه زده باشه که دهن ببنده که یعنی چی یعنی مردم خطر باشه آره تا اون خطر هست اوکیو میدن اگه گفتید کجاست ماجرا کوه بالا سر بنی اسرائیل میره میگم ما از اینا عهد گرفتیم کوه از ریشه درو عجب صحنه خط... خفن و خطرناک خدا کلی. فکرون رفیزی یه کوه مثلا ریشه این کوو داره میره بالا کلاذ اینجوری گشت خب شما با عهد با من هستید بنی اسرای میگفتن بله همینجا بلارنگام کنن همه قلاف کرده بودن خب یاد خدا چی میفرماند دروغ میگن تعادلشون رو دارم میبینم قلب‌هایشان از محبت گوساله نوشیده است بذار از زیر این کوه بیام بیرون بیعت قدیرم همین زیر سنگی چرا مثال میزنه چرا روز شهاب سنگ میاد میگه بینید، اینا بیان بیرون تمومه تا خدا و امر الهی تو دل نشینه تو ادراک من شما نشینه اصلا ببین یک جاهای ناخداگاه ازش میزنی بیرون ناخداگاهمون من در میره و کرکودیل بره دستور میده میگه در رو خطر بزرگ بشه اون نشون داده میشه این تبلیغ های نشون میده دوری مقفی خارجی ها درست میکنن نستر شب یه زن و شوهرن یعنی حالا زن شوهرم با هم دیگه دارن میان که خارج این چیزا رو نداره که دارن یه وقت یه قیافه وحشتناک میفره جلوشون دیدی چه جوری زن زنه رو میذاره در میره زنه دستشو گرفت دیدی چی میکنه دست زنه رو گم شو فرار میکنه در میره آره اونجاست که اون ناخداگا فعال میشه یعنی دقیقا خودش رو به و گسمنده می‌بینه که یک گرگی بهش حمله کری کرکو دیل بره این دستور بقاها می‌ده بود و در رو و نه تمامی این باید به قلب بشینه به جان بشینه این باید روش کار کنیم زحمت بکشیم خودم خودم می‌داریم مثلا وقتی شرائط عادیه دروغ نمی‌گیم حقی کسی رو نمی‌خوریم بلان مثلا ادام در میاریم مثلا در همین مسجد میبینید دستت خوردین لیوانه اینجا مثلا روی میز ریخته ری میزان مول مسجد مثلا اینجا می خورده فرش آقای ببخشید برادر من اینجا یه مقدار اینجا خراب شد اگر این دست مول کاغذیتون مثلا 10 تا برگش خیس شد من اینو حساب کنم اجازه بفرمایید نه خواهش میکنم بالاخره شما ده مسجد ما پاکت که بتونید این با اون در مثلا اینجوری نه لطف دارید بیا دو تا دستم که از بده ببر خونه اصلا حالا فکر کن مثلا این بغل این کسی هم آباستش نیست اصلا دارن سینزنی و تاریک و بلان آبو میریزی دستگاه صوتشون سخ این چقدر پونسد میلیون اصلا نگاه نمی کنی ببینی تو سوزندی ها نمی ببینش کنی سخ رفت آره بین پنیزار تومن تا تو پونسد میلیون تومن فرق میزان دینداری منشون شماست خو خب خدا کیو میخواد برای پیامبر برای دین خودش میگه این معنا نداره حکم خدا گوش کنیدا گوش کن حکم خدا چه در مورد زنا چه در مورد مال حرام چه در مورد پوشش چه در مورد هر چیزی حکم خدا پیامبر میگه من امروز اینو میخوام اعلام کنم نمیترسم از اون کسایی که لائمنا سرزنش میخوان بکنن میدونم هم به من دیگه جلس های خصوصیتون میگید اوزن مسخرم میکنید منافقید بگید من از حکم خدا کوتاه نمید بعد آخراش خیلی عجیبتون نگذارم خدای شاهد باش من تو رو انجام دادم خدای آنوز بخونید خطب قدی رو میفده اجده از صفحه روزی یه صفحه شو بخون همچه آروم آروم بخونید بتیم معنیش دقت کنید بر بچه هاتون بخونید درس آدم شدن صرف اتفاق قدیر نیست که که همون خودش بی مهمه اللهم <coughs> وال من بالا خدایا سرپرستی کن هر کسی سرپرستی رو قبول کن اصلا میگی دوست داشتن دوست بدار هر که رو دوست داشت کمه. و وعاد من آدا برو تو فاز داوت با کسی که او را دشمن میدارد و با او دشمنی می کند و سر من نظرح یاری کن هرکیی او را یاری میکنه و خذل من خذله خار کن هر کسی به دنبال خزلان علی و تنقیس علی و پایین آوردن علیه خودشو بکش پایین. جالب امیرالمؤمنین در روز شورا به همین اس... برای اثبات امامت خودش اشاره میکنه واسه قدیر. نم براتون بخونم. آمر ابن واسله میگه در روز شورا با علی کنار در خانه ایستاده بودم. و شنیدم که علی میفرمود با آنان فرمود برای شل... شما دلیل میآورم که هیچ کس نمیتواند بر آن ای وارد کند. سبست فرمود ای جماعت آیا در میان شما کسی است که پیش از من به یگانگی خداوند ایمان آورده باشه کسی تون از زودتر از من گفتن نه آیا در میان شما کسی برادری چون جعفر تیار که ملائک با او پرواز کنند دارد قاید بگه ما خانوادمون اینجوریه درسته؟ گفتن نه آیا کسی از شما امویی چون همزه شمشیر خدا و رسول خدا دارد گفتن نه همزه تا اون موقع سید و شهده سا شهیده عادی نیست بلا تشبیح ب... مثال بزنم حاج غاسم علانه بین شهده هایی مثلا مدافع حرم و شهده هاج غاسم شاخص شد میدرخشه. آیا کسی از شما همسری چون فاطمه دختر پیامبر دارد چون قصه نیستیم مثلا فقط زنش خوب باشه که نه به اخ... این دستور الهی بوده این ازدواج <متحد> گفتن نه که چی فاطمه ح... سرور زنان اهل بهش سیدت نسال آلانده آی کسی از شما فرزندانی مانند حسن و حسین سید شباب اهل الجنه دارد گفتن نه ببیند به... به وجه بهشتیشون داره اشاره میکنه یعنی این امتیاز الهیست نگه خودش باشه که جعفر برادرم شهیده عموم حمزه شهید به اختیار رفتن شهید شدند، شهید شاخصان. همسرم فاطمه ای که سیدت انس عالمینه. فرزندانم شما شباب اهل جننه اینا رو دارید؟ گفتن نه. آیا کسی از شما هست که به دستور قرآن پیش از نجوا با پیامبر صدقه داشته داده باشد؟ گفتن نه. چند نفرتون همین ماجرات می دونید؟ داستان داره بینی بین این الله. یک نفر چه ماجرا چرا نمیدونیم نبا تاسف خورد به حال کسایی که باید اینو به گوش مردم میرسوندن نکردن ما چی گفتیم از فضایل همون چی کار کردن نون اهل بیتو خوردیم چقدر در مورد اهل بیت گفتیم ها بیچاره آیا است 12 مجادله در قرآن بقیه آیار دیم. مثل آ... آ... آیه دیگه تطهیر زنای پیامبر میگن آقا اینا هم هستن ها اینو هیچ کس نمیتونه بگه جز از بلیست هیچ کس کدوم آیه هست شماهایی که امیر المومنینی هستید دانودبهی هستید کل صبح شدون مدید اینجا یه نفر تو جمعه هست بالا حالا چهار نفرم هم میگن زی اجتماعا میدونیم رسوم نمونه نفر چرا اینجوریه؟ یا ایها الذين آمنو ای کسایی که ایمان دارید، ادا ناجیتم الرسول خواستید برید با پیامبر جلسه خصوصی بذارید، جلسه خصوصی عمومی نه، تو جمع نه. وقت گرفتم امین نیم ساعت خصوصی با بر ببینم، کسی دیگه نباشه. فقط دمو بین یده نجواکم صدقتا قبلش حتما پول بدید. <تصفح> برید صدقه بدید بعد. آیه آمد ذلکه خیرلکم و اطهر هم برای شما بهتره و هم پاکی‌تره لم تجدوا فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم برای شما بهتر و پاکیزه و اگر چیزی نه بدانید که خدا آمرزنده و مهربان است. آیه نازل شد هر کسی میخواد جلسه خصوصی با پیامبر بگیره قبلش با صدقه بده. دوازه مجادله قصه چی بود؟ این مایدارا این شیوخ اشایر میرفتن وقت میگرفتن میگفتن که آقا ما پایانبر کنم میرفته چرتوپرت هم میگفتن وقت پایانبر را رکی میکرد بلا سلبریتی اون موقع بوده پایانبر آره بعد مثلا میرفتن پایانبر نشسته بودیم کجا نار پایانبر اونی میگه چه خبر راستی چی که آره صحبت شده فلانا اینطوری نشسته بوده و مثلا نقل و قول میکردن نگه بعد مثلا تو ه... بخواه بگی مثلا خصوصی تری چی میگی؟ میگی تو باغ دیدمش یا تو خونهش دیدمش مثلا. تو کوچه دیدمش یا تو خونه دیدمش. نه خونه شما. کجا با خونه شما بود؟ نه. حالا خونه با چه دعوتشون کرده میان انشاءالله. گفته میام. خونه خودش شد. تو نشستم. اصلا... این که با هر کسی هم دیاره. بله. این ادا و این فازا. ما فقط چایق مثلا قمپهلون میخوریم و پیمبرو در اصلا خصوصه هیچ پیمبر کار زندگی مونده بود مهربونم بود هیچی نمیگفت می ناخته مثلا گاو میرفتن تو آیا اومد میشه در بزنید اجازه بگیرید بعد برید تو بعد اولاق اومده میگه های مدینه در نداشت <تصفح> در بزنید <بید. تصفح> بله نسبت اولاق میشه اجازه بگیرید او حیام میکن مهربون هیچی بتونه به روتون نمیاره من خدا بهتون میگم پاشد این آیا اومد از این به بعد یک کارتخان میزاریم چلا دمه در هرکی خواست جلسه بزاره CGT بست خدا بر جلسه با پیامبر مالیات تنظیمگری گذاشت مثلا فرض کنید برای خودش برا پیانبر پیامبر هم گفت صدقه برد بدید غیلی جالبا تو اینجا میخواه کارو او برو به پول پ نتیجه بگو چی شد؟ حدس بزنید. یک نفر از اینا دیگه نرفت جلسه. یک نفر دیگه نرفت جلسه. ببین چی میگن. ابن کثیر میگه. تبری میگه، فخر رازی میگه، ابن تیمیه میگه. بابا این وهابیا امینا شب گلستان تنها منفجرت بودم اینا اینا میگن علی تنها کسی بود تا قبل از نسخه این آیه که با آیه نزبه عمل کرد خود امیرانوی کسی پولدار نبودی این آیه در مرده بود چون اینجا نگفته اونی که پولارا ها تو آیه نیست میگن تو تفاصی یه دینار داشت رفت ده درهمش کردن یه دینار ده درهمه هر بار میخواست بره پیش فهمیم بره یه درهم صدقه میداد میره میگه تنها کسی که پول داد علی بود <تصفيق> فقط و فقط و فقط آره دین داری به زبون که بریم بشینی نار بخوری و حرف بزنی که این همه هستن برای این وزن عقیم و سلات بعدش چی؟ باریک. خیلی ارزش داره از پولت در راه خدا خرج کن نشون میده منافق نیستی سخته پول گذاشتن. چون پول یعنی تمام رفاه پول که میتونه یه تبدیل بشه خونه پول که میتونه تبدیل بشه مسکن میتونه تبدیل بشه به رفاه بیشتری میتونه آدم استخدام کنی تا قاشق بزنه تو دهنت غذا بخوری دیگه جویدنش زایه است وگر نام اونم انجام میدادن تا این حد درسته نیستن که از اینجوری دست به سیاسه وید نزنن، خونه رو تمیز کنن، این کارو رو انجام بدن. در ماشین برات باز کنن، ببندن، 4 نفر گولاخت آهن باد بیان برن. بعد جاله بگو برید جو ببین اونجا یه نفر جلو در خونه پیامبر نشسته مثلا پول جمع می‌کنم، نه، برید صدقه بدید. خدا بعدن روش اینا چه جوری پس فهمید تنها علی بوده؟ خیلی مهمه دیگه. درسته؟ از کجا؟ یارو میگه من یواشکی صدقه دادم شما خبر ندارید که. آیه 13 از آیه شج. حالا برات میگه مجاهد میگه از مفصلان تابعین نزد ما علی میگه. میگه که بله، آیه در قرآن است که خود میگه از نظر میفهمه. که کسی قبل از من و بعد از من به آن عمل نکرده و نخواهد کرد چون آیه نسخ میشه این قانون برداشته میشه بعدن آیه سیزدهم حذفش میکنه نسخ شدید در قرآن میگه نسخ شد یعنی همین دیگه یعنی ای کاربوری داشته باشه تموم شده آیه این آیه به درد نمیخوره چرا همین الان داریم بهش استناد اشتباه نکنید اون قانونه مثلا اون اول که میگفت اگه مشروب خوردید اینجوری هنوز کامل تحریمش نیامده بوده آیه بعدی که کامل حرامش کرد نسخش کرده دیگه من من یک دینار داشتم آن را به ده درهم تبدیل کردم و هر زمان می بر با رسول خدا ای بگذارم خدمتش می نجوا کنم درهمی را صدقه می دادم حاکم نشابوری میگه گه شرط صحیحین این این شروط صحیح بخاری صحیح مسلم صندقه صحیح میگم گم دیگه از ابن تیمیه که دیگه زبانم لا نسبت دزدی به امیر داده انقدر بیشرفه اینا که دم از چیز میزنن خیلی خدای کارایی میکنه قربونش برن با اینا تو جهنم کار داره چون حجت و تموشه همینه که میگن دست به یه جا بزنی مشرکی سری میان بابای حساب بچه رو در میارن ابن تیمی که مرد ابن تیمی سنی ها انداختنش تو زندان تو زندان مرد بدنش شیپیش گذاش اصلش که داشتن میدادن از لای آب که نمیشوستان شیپیشا میریخم اینجوری میگه آب شیپیشا رو می خوردن برای تبرک یه شیپیش گلاسه میزدن شپیش گلاسه ابن تایمیه برن یه بزنن دیگه برندی هم کنن مثلا شیر موز شیر پسته شپیش گلاسه مثلا اینا تاریخ نقل کرده اونم میگه این تا فقط در نور دلیم حالای بعدیش یه اعش فقتم انتو قدمو بینه یده نجواکم صدقات از اینکه پیش از صحبت کردن و راز گفتن با رسول خدا صدقه بده ترسی دید نه آیه قرآن اومد فاز لم تفعلوا و تاب الله علیکم فاقیموا الصلاه آت و اتوا الزکات و اطیعوا الله و, رسول و الله والله خبیر بما تعملون پس حالا که ادای صدقه نکردید پیچوندید و خودم شما رو بخشید حالا پاشید برید نماز به فابه دارید زکات بدید از خدا و رسولش اطاعت کنید خدا هم به همه کاراتون آگاهه یه مالیات بستیم بهش سری بی خیال جلسه شدید نه اینا مردم فقیری بودن برای همین گفتیم مثلا ای بسا, ای بسا ای بسا این لباس حجین لونگه لباس فقرها بوده همینو داشتن دیگه. ببخشید لباس زیر کسی نداشت لباس که دوخته بشه لباس گرون بوده من خیلی چیز توضیح بدم خدا حاجیش و شبیه فقیر ترین فرد موجود میکنن اگه مدلمون مون نماد خوشگلی و زیبایی مثلا موش قشنگ تره رن کتی را زده اون یکی نام چی چیه میگه همه رو به تراش عطر ممنوع بعد نمیفهمندی مثلا اینا همه را ماراد میکنم آیفون را میگرند هست گرفت چی شد؟ آیفون را میگرند هست. یا مثلا توی کاروان های عضوان که مثلا حوله که دورشون بستن حوله بستن دور خودشون تو از بعد برید مثلا رو با یه اتوبوسای میارن اصلا دهنت باز توجه بعد این افریقای ما افریقایی میام خدا شد من عکس گرفتم سنگ گذاشته بود رو سنگ خوابیدود من دیدم کشورشون مثل مثلا کشور ما برای خودشون جایی داشته باشه اینجا چادرای ایرانی‌هاس از قبل کار کرده باشن فلان اینا رو ندونن میارن اونجا روی بیابون روی زمین میخوابن اصلا باورت نمیشه تون گرمونه میمونن ما تصور نمیتونستیم بکنیم یه دقیقه از زیر کولرگازیه توی چهادارا بیرون چی میشه <تصفيق> رفتیم یه نیم ساعت دور بزنیم بیرون رو نگاه کنیم در رفتیم برگشتیم گفتیم عبادت اینجا بهتره اینا اونجا خابیده بودن حالا عادت دارن آفریقاییان هن تو سرزمینش اینجوری بوده حتی برای همین پول برای مهم بود دستور صدقه یعنی جون بده برای هم کنار هر سلاتی یه زکاتی چسبیده بدون تو چه جامعه ایه؟ تا روزه که آخرین درهم رو امیر المومنین داد بعد این آیه من شد مثلا 10 تا جلسه با بر رفت 13 نازل شد. بعد امیرالمؤمن به این اشاره کرده. ببینید خیلی درد و فضای فضائل امیرالمؤمن. آقا اینا از همین امروز شروع کنید. به ذهنم رسید تو شبکه‌های اجتماعی تا دو سه روز حتی بعد از میلاد امیرالمؤمنین فضائل امیرالمؤمنین رو بنویسید. یا دارم من سنداشو براتون خوند. همینا رو میتونید جستجو ساده پیدا کنید بنویسید. به گوش مردم برسید. برای خودتون خوبه. برای خودمون خوبه. من برسم خودم شروع میکنم. ذکر فضاییم نشنیدیم. مای شیعه نشنیدیم. سنیه کجا میخواسته بشینه؟ بشینم با چیزی. بعد امیرمون پ... در ادامه فهمه. آیا در م... میان شما جزمن کسی است که پیامبر دربارش فرموده باشد من کنتو مولا فعلیان مولا؟ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره آ کسی از فرمونده باشد که شاهدان به قایبانی رو برسونن گفتن نه ما خودش به این استناد کرد خدا عزا اصل از زمان خلافتش فرمود حالا که تموم شد دیگه کاری که می‌خواستید کردی کردید و منم دیگه خلیفه شدم کدومتون یادتونه قدیر نه رای ندید پاشید باشید قیام و قبودی کرد از جلسه شی و کردن تو تعداد کسایی که بلند شدن بینید شهن و اختلافه. یه ده بلند شدن. که اونجا با ما انس اون حرف رو میزن و اون ماجرها پیش میاد. با من آلزایمر گرفتم میدم نمیاد. <تصفح> نمیخواستن قبول کن. کسی که خوش رو به خواب زده در چجا میخوای بیدار کنی. <تصفح> قرآن تذکر میدهیم. یه بابا کوه گرفتم بالا کله این بی پدرها. <تصفح> کوه نگه داشتم بالا سرشون بیان در دوباره چرا این بنی اسرائیل رو مثلا باید باید تو هم مثل بنی اسرائیل چه فرقی داره؟ مثلا اون آدم مثلا نسخه مثلا بتا بوده تو مثلا خیلی ویژتری چی آدمید دیگه همینی؟ تازه اونا چی بودن؟ اونا در بین حضرت موسی تو چه قومی آمده؟ قومی که یعقوب دیده ابراهیم دیده اسحاق دیده یوسف دیده یعنی پیامبر بینشون بوده شد اون شما که شودتر از این حرفایی ببا <تصفيق> شما اصلا چ... چ... چی بدون بگم اونا بدبختا کجا آدم زنده به گروم کردن یه جوری میگن مگه میشه تو صحابه پیامبر همچین تو اینگاه مثلا الان مثلا توزه می قوم وحی نازل شده بوده مثلا. تو داشت امیر المومن خوبه یا بقیه هم لوتون دادن دیگه امیر چی میفرماد؟ حضر زراد چی میفرماد؟ امیر المومن یادتون رفته چه چالای آب میخوردید ان نظافت و من ایمان از چالهایی که شطرانتان دران ادرار میکردن آب میخونیدوشیدید روز زمین آب جم شده بود شتوره هم ادرار کرده بود خم میشدن همین لبش نمیسته شروع که آب خوردم فراموش فرمودید؟ بچه کش بودید؟ بابا آدم دلش نمیده مرچه ای رو لغت بکنه چی بودید شما؟ یایتون رفته؟ الهاکم و تکاسر حتی زورتون مقابر؟ سر کوریخونی میرفته قبره هم میشموردید؟ نه اشیره ما از شما بیشترن هست. چقدی ما 152 نفریم ما بیشتریم. چه جوری بیشتر؟ بیا برویم قبره هم بشموریم. مقابر! یادتون رفته؟ یادتون رفته به زن بابا هاتون رحم نمی کردید؟ عرص می بردید؟ 200 تا زن 300 تا هم نقل شد باره وضعیشون. اسلامت محدودش اینگه گفت چهار تا 300 تا زن میگرف یارو 6 سال یا به یارو زن, زن, زن, زن, زن سر نمیزد بعد میگفت اون نیاز جنسی داره شاید به خیانت کرده گفت راه داره میگفت چیه میرفت توی بیابون به یه خاریت که پارچه میبست اگه اون باز میشد میگفت زنه من خیانت کرد یه خریم پیدا میشد تو راه همجینا رو GGNار باز میکرد <Blockchain> یادتون رفتی چند مدل نکاه داشتید نکاه های خاک برسری داشتید؟ بگم دهنم باز بکنم <تصفيق> نکاه های داشتید؟ نکاه های داشتید رو نداشتید؟ بدل داشتید؟ نکاه جمع داشتید؟ الان تازه تازه تازه الژی بی تی ها رو انداختن 1400 سال پیش شما رفته بودین این که ندارم اینه شما آسفالت کرده بودید <تصفيق> عروض یه چیزی هم اضافه میکنن الژی بی تی کیو آر و همسرهاشون رو با هم وضع میکردن گروهی زنامی کردن بعد مرمون بچه مالکی داور میذاشتن یک وضعی اگه دختر بود که هیچی مثلا. کدوم بچه <تصفيق> اگه پسر بود زنه قانون بزشتن. هر چی خانومه بگه حالا مثلا قیافه مثلا کامل به ای... تابلو بود بچه کدومی کشونه به یکیشون رفته بود و نطفه بسته شده بود میدید که کی بیشتر هوا شده ره میبستش با اون دیگه بگم کدوماشون به این روش به دنیا اومدن برق از سرتون بپره بگم تاریخ نقل کرده خودشون ها کرد. کدومایی به این روش چی بودید بنی اسرائیل می شده باشه قرآن گفته هارونو پس بزنن کوه بالا سرشون بگیریم نمیخوایم قبول کنیم ته دلمون نمیخواد بپذیریم محبت گوساله داریم از هارون خوشمون نمیاد یعنی اسرائیل میشه اینا نمیشه میگشتی میگشتی 17 نفر میگه تو کلشه به جزیره خوندن نوشتن بلد بود <تصحق> کل به جزیره خوندن نوشتن چی چی اصلا پروژه در می خوره این, این که مثلا بگی, بگی, بگی مثلا بگی مثلا 80 سال پیش بگی آقا کدومتون غنی سازی بلدی الان میتونید مثلا اینجوری بوده و پیامبر برای این جامعه تو جنگ بدر گوه هر کسی بتونه به ده نفر سواد یاد بده آزادش میکنم بله جامعه مسلمین رو برای رشد داد دامداری نباید بزنی فقط بگیم اینال ببرم تو آقل بیارمشون بیرون ببرمشون تو آقل بیارمشون بیارمشون رسالت هفضاش آگاهیه گوستفنداری که نزدی که وقتی اون آگاه شد اون خودش ترام کنترل میکنه چه برسه به دورواریهای خودش و فلان. همان <تصفيق> فهممت والله من والله این دعاهای مستجاب پیامبر اینجا شنیدن داره. اولا پیامبر با واژه اولا این قرینه رو گذاش که بگه مولا به معنی اولا به تصرف است چه کسی اولاست از خودتون بیشتر تر... حق داری نسبت به خودتون بیشتر جون تو بیشتر از این دست خودت باشه دست اونه حالا <تصفيق> آره دیگه حکم جهاد میده می, می جان تو تقدیم می‌کنی بچم خودم تشخیص دادم نه او تشخیص داد تا این حد پس میفهمیم اینه حالا دو تا دعوا دو تا نفری اول ف... الله وال من والا خدا سرپرستی کن کسی را که سرپرستی علی را پذیرفته است معنی ولایت هم گفتیم یه مروک ساده یک دو دقیقه بکنیم از عهدهداری امور سلطه استیلا رهبری زمامداری که چه چه همین را معنا کرد در کتاب های لغت اهل سنت هم داریم مفردات میگه ولایت یعنی یاری کردن و ولایت ولایت با کسر ولایت با افت ولایت یعنی زمامداری و سرپرستی و امور و گفته و گفته شده است که ولایت و ولایت مانند دلالت و دلالت است و حقیقتان سرپرستی است مفردات ولی و مولا نیز در همین معنا به کار می‌رود انتهای میگه ولی یعنی یاور و هر کسی امری را بر عهده بگیرد مولا و ولی آن است و از همین قبیل است حدیث من کنت مولاه فعلیون مولا و, و سخن خلیفه دوم که به علی علیه السلام گفت تو مولای هر مؤمنی شدی یعنی ولی مؤمنان گشتی از فی لغت العرب هر کس سرفرسی اومی را بر عهده بگیرد ولی ولی یه اوست آقا به ولیتون بگید پاشه بیاد مدرسه دوست تو میگیر میبری؟ ولی یه دمشه دوستش یه رفیقی داشته جونجونی بودن خونخونی بودن چی چیزی <تصفيق> شاید <تصفيق> معجم مقایس اللغه هر کس زمام زمام امر دیگری را بر عهده بگیرد ولی اوست حالا چه میشه اینجا واقعا دوستی گرفت چون قبلا بحث کردیم پس وال من والله خدای و امور و سرپرست، سرپرستی براید گرفتن میدونی یعنی چی؟ یعنی این دادو شما وقتی ولایت احل بیت و امیر قبول کردی دیدی یه جاهایی داری سمت گناه میری شرایطش فراهم نمیشه خال زدم نه؟ همه اون گناه کاریم دیدی میخوای یه غلطی بکنی شرایطش فراهم نمیشه یکی نمیخواد اون کار کنی انان تو دادی دسته یکی دیگه از سر دارد در سر نوشتت جمعه میکنه دقیقه نود خب بچه میخوام تربیت کنم چیجوری تربیت کنم خب با کدام روش گفتم این روشی که میگم اونا رو کارا رو انجام بده پیگیری کن آه. اما برو رو حرم امروزا بگو آقا ما تعطیلیم نمیتونیم خودت بلایت این بچه رو بر رفته بگیرید ولی او باشید بله من والا خیلی معنی بعد این دعای مستجاب پیامبره یعنی راه این که خدا تو به دست بگیره چیه؟ تهش بهش کنه چیه؟ ببین به شما چی گفتم؟ خدا مؤمن رو چی از تو بازی زندگی میکشه بیرون؟ تو اوج. خود عمومه چون انسانه دوست داره تا دقیقه 99 بازی کنه تماسیاتی ها دارن فوشه بغدار میدن دیگه به بازی کنه اینقدر خراب کرده خودش نمیفهمه داره خراب میکنه مربی نگرانش میگه این خوش شده. خود بازیکن ها میگن در اوج از مسابقات کنارگیری کرد خدا بندش تو اوج میگیره میبره خدا واسعون علیمه میدونه تو آینده تا بر قرار گناه دیگه کنی میدونه میدونه مسیرت درست نیست اصلا باید علم غیب داشته باشه چکار میکنه میگه اینو تو تایمی بگیرید ببریدش که بهترین جا رو داشته باشه اون طرف این داره اعمالش نابود میکنه این افتاده تو دور بد شدن برای همین هیچی مثل گناه عمر مومن کم نمیکنه و هیچی مثل مستحبات عمر مومن و زیاد نمیکن وال من والا و آد من آدا اینم عجیبه خدایا هر کسی با علی دشمنی میکنه خودت دشمنش باش یعنی دقیقا همان گاردی که جلو شیطان داری میشه خود جلو اینا بگیری تو مستجابا یعنی خدا بلارو گفته از قبل جالب کسایی که جلو امیرالمؤمنین بیستن دشمنی خدا رو رفتن تو جا قرار گرفتن تو پوزیشن واش اینا رو خدا یه جور دیگه باشون تاوان میکنه مثلا چیکار کنه؟ عمر بهشون میده کامل خوب گناه کنه خوب بهشون اجازه جولان میده این سعودی ها رو ببینید مثلا بعضیتون سوال میشه چرا خدا بعضیار اینه اینا یه بچه مشترک داره اینا همیره المومن قبول نداره بقیه دوچار دوچاره ابتلاه میکنه همین دنیا باشون حساب کتاب بکن اونارو رو نگه میداره اون طرف تا آخرین روزای عمرش با استکبار زندگی کرده آدم رو به بردگی یرفته قرآن سنت امحال برش میگه محلت بهش بدید استدراج آرام آرام درجه درجه بره تو قعر درک و جهنم اصلا نه سمت من خدا چیزی نخواد از من عجیب ون سور من نسره یعنی او حرف اول اون کسیه که نیاز به یاری داره خیلی حرف عجیبه او یعنی کی؟ اول امیرالمومنین. المومنین دوم اون کسی که امیر یاری میکنه یعنی ویژگی ای امامت این است که به واسطه مایی که خودمون نیاز به یاری داریم قراره به او کمک بشه امامت فرقش این بود که کلید داد خود دست ماها یعنی ولكم کمک کنیم می حضرتو. وخ ظلم من خزاله تنها بذار کسی که او رو تنها میذاره دیگه. پس نباد او رو تنها گذاشت. یعنی بعد دائم به این فکر که اصلا امیرالموین الان بود چی میخواست. خوش کمک کمکم کنید عینونی بالورع والجهاد والعفته والصداق. جهادگر باشید تو هر لحظه کیامیت برید مجاهدت کنید، برید جهاد نظامی برید جهاد نظامی، جهاد اقتصادی، فرهنگی، جهاد تبیین برید حرف بزنید. ولو بر پرونده مهر بکنن، ولو براتون تو مقصده، ولو فوشه تو بدم، فلان تو. با... وظیفتونه. هر کدومش شما امروز یه گرید، گرفتی. حداقلش تو و فامیل خانواده خود میتونه حرف فرزند. اما ابزار مواجهات هم فرامن کن. چیزی اون جاهات شم شیر میخواد، با تیر که نمیتونی بری؟ اینجا بعد آبزارشو فرامن کن. این نه اینکه شم جعلی بزنی به خاطر بعد خودت از نظر حسیت و آبرو کشتن بدی بگی من دیه. شهید و جنباز راه جهاد و تبینم تو خود خود رو به باد دادی یه از این دوستان تعریف میکرد میگفت یه بندگونو خدای را آورده بودن بهشون حک یاد بده میگوید دو سه روزی گذشت مندم اینا خیلی تحتیلن این رئیس اومد گفتش که اوضاع چطوره گفتم خیلی بد گفت یعنی چید؟ باید نمید دام نه خیلی خیلی بد گفت چیکار کنیم؟ گفتم تایش به شوخی ها شوخی حالا به تحکیده گفت تهش این انتحاری در بیاد بعد دیگه بانو خود سرش نخ پاین داشت فیلم که چیکار داشت میرفت بیرون از کلاس اون درس میگفتم ریمونت دست خودشو ندیم هلی خودتو مثلا تو خودی ها بتره کنی منظور نه. بله میفرماد من آدم متقی میخوام ورع داشته باشه نه تا الان نفسش مثلا می‌ارزه. یکی از این ادارات یکی از این آشناهای ما اونجاست. اصلا به خودش بخص کرده بود میخواست بهتری که گفتم چرا گفت بابا تو دولت رئیسی پروفایلاشون همه اکس فلان وزیر بود وزیر آی رئیسی سوپر ازبول و این بهتون تو میگفتم کدوم وزیر مثلا قشنگ حس پیدا گرفتید نمیشه وزارت خونه هر نمیخوام لوگو بدم بعد میگو الان نمیبینی همه پروفایل ها و اکس هایی چیه بادسا پایینا رو همه رو جمع کردن در گذاشته. نه چون تا می دولت ازبالایی یا ریش بذاری افردا یه هایی پروفسوری میشه بعد می زنی آروم آروم نه تو دنبال حقی مجاهدت میکنی کنی داری ورع داری کسی که ورع داره با بنده خدا کاری نداره میگه حق حق حقه میگم میخواد به چپ بر بخوره به راست بر بخوره بیاانه حقم افراط نمیکنه ها اندازه داره پزره دشمن تکمیل نمیکنه یه اهمی رو زمین نمیزنه به خاطر مهم. و اینکه ونصرور نشان دهنده این بود که پیامبر میدید چه ظلم عظیمی در پیش است در مورد میره یعنی پیامبر وقت میفرماد صر من نثره داره روزه در و دیوار رو می بینه داره دستای بسته شدن رو فل عینه قضا و فل فلحلق شجا استخان در گلو خار در چشم داره میبینه داره میبینه بر هفتاد هزار منبر امیر رو لعن کردن داره میبینه تا زمان امام صادق قبر متعرش مخفیه که اگه پیدا میکردن میرفتن پیکر متعردتوز قبر بیرون میکشدن اینا رو داره میبینه داره میبینه روزهایی رو که هر کسی اسمش علیه سر می برن داره می بینه یه روزی در بغداد چارده هزار نفر رو کشتن به خاطر قدیر سر بریدن ساده نگذره و چارده هزار نفر چند تا خانواده چه فاجعه ای رخ داده داره می بینه این آن رو می علی نیاز این مکتب نیاز به یاری داره ون سرمن نصره خدای میای پشت اون کسی که پشت این مکتب میسته ولایتش رو وراهده میگیری خدایا بهشتیش میکنی اینه دقت کردید ما یه چیزی داریم دوست نداریم به کسی دیگه بدیم مثلا یه خونه خونه بزرگترش کنیم بهترش کنیم آه بیایی نصف خونه هم تو این نیست اما توی این ولایت دوست داریم همه رو شریک کنیم چرا این جنسش فرق داره جنس الهیه میخواید فریاد برید تو خودت میخوای بلا تشبیح شبیه اون پیامبر باشی تو همین دستو بگیری بالا بگی آقا این آها این آقا اینه این بزرگوار اون حدی که مثلا چجوری نام امیر رو تو دلاب نازم؟ آقا داری یه پول میدی به یه نفر خرید کردی داری کارت میکشی داداش یا علی شیعه اینجوری نصرت امیر المومنین میدادن در حد کمک ر... یعنی یا نام امیر المومن مسافی شده بود با خیر رسانی و برکت و کمک داداش یا علی کن خیلی عجیبه ها زرب المثل شده یا علی کن یه دست علی بده یعنی صدقه داریم کس دیگه نداری ما نداریم علی علی پیش بریم حرکت جهاده بلند بشین آقا یا علی یا علی مدد یورگانو دبد امید شده این در این حد امیر المومنین یعنی نامش یعنی خیر رسانی هم هم می دونن. و این نفر که امیر تا این دیتیل ها رو رایت میکنه میگه پول دارم میدم بذار اون آدم رو شرطی کنم تو گوشه ذهنشونه بگه من این اسمو میشنوم یعنی بایادم با مرام داشمشتی طرفم خواه نیست امانت داره کمک رسانه مثل خود مولاست مرامش اینه ورزشی که نام امیر ورزش باستانی برید ببینید چه هاد. زمین تو اصلا اگر ورزش نیست انگار کار فرهنگی داری میکنه به قرآن باست <تصفح> میبینید گل ریزون میکنن زندانی میگن برید تو زخونه آزاد میکنن کسی بدهی داره تو اونجا و؟ اینه کشتی که کشتی که از فرهنگی ملی ماست میبینی موقع وارد دوشک شدن این زمین میبوستن یا علیشون روی دو شونه فن که میخوان بزنن علی رو فریاد میزنن کمک میخوان اینه عزیز من نام هم فریاد بزنید در رو. دنیا در به اندازه خودتون یه و خودی بنزد توی این آش این نصرت میرسون و هر کسی هم با امیر المومین در افتاد وقت ظلمن خزله تمامه شک نکنید ما کسی رو تنها میخواییم بذاریم میخوایم میخواییم بیچارش کنیم مینازیم زندان درسته؟ کسی که علی گفت آخرت خودش آباد, میکن. آباد میکنه عبدیتش آباد میکنه تا ته این زندون مال اینا. چون همینجوری مشهور میشه. اینو به گفتم اما فکر می‌کنم آخر مؤخره خود بشه، آخر ما جلسه رو جمع کنیم میشه. گفتیم براتون هر دنیا نسبت به دنیای بعدی خودش جهنمه و بهشت باشه ولو بهشت باشه این دنیا نسبت به دنیای بعدی خودش جهنمه. دقیقا جهنمه. از بدترین جهنم مثلا بچه تو رحم مادرش قشنگ نسبت اون بچه که یه قلوه نصاب کسی دو قلوه جاش پیشتر راحت لم داده لقت میزنه و میچرخه و بند ناف هم که وصل و گفت براه بند راف هم براه بهش میگه داداش این دستا چی میگه الش شرت پاچ ولش الش دماغ و توی ماهای حقوته بره میبهد بچی بند ناف همین چی از اینجا میاد بعد میخوام برینم بچه پسر دختر سالمه نیست مادره میخوام از سونو قبلش بهش قند میدن شربتی میدن خیلی قندش بالاست میخوره طریق خون جذب میشه میاد شروع میکن لنگو لغه زدن بچه پشتگ میزنند می میپره بالا پایین ها این دستگاه سنوگی رافیه میبینن قشن میچر خوب از زبایه مختلف به نقر بچه رو میبینن درست شد؟ خب همین بچه به دنیا میاد درسته حالا همه میدونن پا نداره نمیدونست پاچی. چی همه میبینن چش نداره اطراع و رایه های مختلف رو میکنن نمیفهمه چی می‌بینن نمی‌بینه بینه او رفتاده روی چیز نمی‌دونه این چی عجب جهنمی چی جهنم؟ همون تو اینجوری بودی لا مستب <تازه>, تازه اینجا سر راحت‌تری فلان نه جهنمه دیدی؟ دید جهنمه؟ حالا یه نفر رو بری بهش سر بزنی تو بیمارستان افتاده باشه روی تخت تکون نتونه خودشو بده غذا نتونه بخوره با یه بندناف پلاستیکی ببخشید بهش میگه سرم بهش دارن غذا میدن همینجوری افتاده دو سال سه سال همونجا نمیگی خدا راحتش کن. چرا میگی راحتش کن؟ چون جهنمشه. اینکه اوم بهش بود؟ بله. هر آنچه که در آن دنیایی ان است <تصفح> در اینه به علاوه یک جهنم است. پس یک کسی رو خدا بخواد نابودش بکنه درگیر این دنیاش میکنه شو. به این فکر نیست در رحم مادر دست و پایش را درست کند از طریق همان بند مواد مغزی بگیره نور چشم داشته باشه از اولاد قبیل که تو دنیای بد بودوه ببینه ای بسانه می دونم برخی از این گرفه های زدن من خیلی هم قبول ندارم و بگم که آقا ما اون دنیا برزی از این افراد گنهکار و غرقه در ایش و های دنیاوی دیدیم بعد اقل من بخوام اینو درستش کنم میگم در اون دنیا دیدیم مثلاً بگم وقت درازش کردن یه سیم سروم بهش وست کردن هیچ توی اتاقیه بقیه دارن میدونن تفریح اشغال انواع بقیه تو شعربازی هن این اینجا افتاده بستنش بهش نمیدن بستنش توی یه جای تنگ ناختنش توی سلول تنگ بابا ما میخوام پدر یه نفر در بیاریم این نوزه میشه انفرادی یارو تو انفرادیه خودکشی میکنه میخواد رهابش یعنی جهنم میدونه عذاب میدونه بس بزرگترین خزلان اینه که کسی درگیرین دنیا میشه و چقدر تو آخر رو زمان زیاد میشه مال دنیا آخ, آخ، میدونن کلا سر هم میذارن پول همو بالا میکشن مال مردم میخورن به خاطر چی؟ به خاطر همین انفرادی احمق احمق خوشحال خلابرداری میکنیم فهمه تش گور تنگه ای بسا ای بسا مردم احکام ما از سمت خدای حکیم آمده احکام از حکیم میاد ای بسا این که میگن جنازه رو به توی گور که ببینید تهش چیه اون حس رو ببینید این سنگه رو می‌ذارید روش باقو جنازه میخواد پاسد بشه بره دیگه. چیکو میخواد بکنه؟ او فشار قبر مثلا میگم مثلا این دیوارهای قبر اینجوری مثلا زیر جک هیدرولیکی گذاشتن اینجوری میاد فشار میده مثلا حرفا چی تو دریا خفه شده مورد فشار قبرش کجا بوده مثلا یارو تو انفجار پودر شده رفته بعد فشار قبر اون چی چیه؟ این فشار روحیه. این قبر میسولیس میگم یکی از دلایل شیبساین باشه. ببین هیبت تکرار کنم چون مریضام داریم میتره. از اون شنونداست مریض احوالن. خدا شفاشو بده به قمیرالمومن. بعد اون احمقی که برای دنیای یکی دیگه آخرت خودش خراب میکنه برای اینکه یکی دیگه رئیس جمهور بشه، یکی دیگه رئیس مجلس بشه، یکی دیگه کجا بشه، فلان بشه، این خودشو بدبخت. احمق الھوماقاس یا رو اشغالش میخواد بره بکنه اون تو سرامشه ویتامین بزنن <تصفيق> این درد جهنم درست مپرس باشه پس خزلان در مورد اینا آخرت خودش آباد میکنی دنیا هم آباد میکنی من نخواستم چون اینو بگم این بخش رو بگم عبادت و تجار میشه اما اون آخرتش هم خیلی بگی عبادت ما امیر المومن رو باید یاری کنیم شون فطرت اون اینو میخواد چون حق اینه چون خدا اینو میخواد چون امر کرده بلغ ما اونزلالک دستانی رو هر بالا چشم چشم اللهم عجل ولی که الفرج و لافیت و نصر و جه من خیر عوانهی و انصاره و المستشهدین بین اده تحجید در فرج قطب آلم امکان ازداد صاحب الزمان سلامتونت بفهم